ده یه حدیثی از پیغمبر راجع به آموزش تابو بکنم خدیزی باز سندشام از سنتی میکنم کتاب فراه اتوسنتین جلد دو صفحه 68 قال رسول الله لوقان ال ادل رجولان لقان ال حسن عليه السلام چرا؟ عجب زی لو كان العقل رجلا اگه بنا بود عقل یک پارچه مثل آقای خودشو نشون بده لکان الحسن اون امام حسن منه چرا چون امام حسن یه نمونه شین در حساسترین شرایط احساسات مسلمین قرار گرفت قضیه صلح عقلو حکم کرد یا احساساتو حتی حجر ابن عدی من میگم سلام الله علیه چون حجر برگشت نه اینکه که خدایی نکرده شدت عشقی که حجر به اهل بیت داشت وقتی امام مجتبا خواست سلحو به پذیره حجر اومد بفهمی نفهمی جسارت کرد نمیگم جسارت حالا مثلا اعتراض کرد شاید آقا چرا صلح؟ یعنی چی؟ یعنی احساسات حتی بر مثل امثال حجری حجر چه شخصیتیه؟ حجر شهید شد در راه همی یه امچو فردیه امام حسین علیه السلام در نامه اعتراض آمیزی که به معاویه نوشت یکیش این بود تو کسی هستی که حجر رو یعنی کشتن حج، حجر شهادت حج رو بزرگه که امام حسین تو نامش معاویه رو خطاب قرار داده توی همچه آدمی هستی اما این حجر تو عقل و احساس یک کمکی احساسش یک کمکی رفت قلبه کنه که امام فرمود حجر حواست باشه حالا به امام مجتبه میگم اومدن جلو امام رو تو صورتش نگاه میکردن میگفتن یا مزلل مؤمنین نعوذ بالله یا مزلل مؤمنین ای کسی که مزلل دهنده مؤمنینی چون احساس مثلا احساساتشون کل کرده بود چرا با معابیه نجنگیدی اون وقت بهار جلد 75 صفحه 106 امام مجتبی فرمودن الار احون من النار الار احون من النار همونی که امام حسینم روز عاشورا به صورت رجز میفرمودن الموت اولامن رکوب الاری ولار اولامن دخول الناری الار احون من النار بزا مردم بگن آر و ننگ برای من این بهتره تا جهنمی بشم یعنی چی یعنی تحلیل عقلی